استان هفتم رقص مرگ بخش اول دیروز صبح او را بردند دو روز است که او را بردند از دیروز صبح تا به حال آهنگ های دنس مکابره در گوشم صدا می کند. مرتزا دست رجبلی رجب را گرفته در نیمه شب از قبر بیرون میآید. مرده دیگری با قلم دست دختری روی جمجمه جوانی آهنگ های محیبه رقص مرگ می نوازد. قبرها دهن باز می کنند، پستخان بندی از گور بیرون می آیند و دست جمعی سرود مرگ را می خانند و پای می کوبند. مارگریتا با صورت تیر اما زنده تماشا می کند. او فقط میخواهد خواهد مرتزا را از این رقص دست جمعی بیرون بکشد. دیروز او را بردند. از میان ما او را بردند. کسی را که سه ماه آزگار شب و روز با او بودیم با او هم غذا بودیم کسی را که با ما دعوا کرده بعد آشتی کرده بود کسی را که به او توهین کرده و بعد از او معذرت خواسته بودیم. کسی را که پیش ما گریه میکرد و ما را می خنداند، کسی را که هنگام بدبختی شریک درد ما بود و در ناامیدی به ما امید میداد. زندانی را از پیش ما زندانیان بردند و به ما هم نگفتند که او را کجا بردند اما خوب می‌دانم که او را کجا بردند بردند بکشندش محکومه به مرگ بود مرتزا دیگر نیست مرتزا در رقص مردگان که هر شب نیمه شب تا بانگ خروز در گورستان ولوله می اندازد شرکت می‌کند. آخرین ساعتی که در آزادی بوده جلوی چشم من مجسم است او را خوب میبینم صدایش را میشنوم که فریاد میکند مارگریتا، مارگریتا. به هیچ کس نگویی به هیچ کس من در این چند ساله زندگی در زندان زندگی نه زنده به گوری من در این چند ساله زنده به گوری زیاد نام زده مرگ دیدم دیدم که چگونه در موقع ابلاغ حکم دادگاه رنگشان پریده زانوهایشان سست شده و نزدیک بوده است که همانجا جان از تنشان در رود اما این حالت یک ثانیه بیشتر طول نکشیده و فوری امید جای آن را گرفته است امید به نقض فرمان امید به عفو امید به زیر و رو شدن تمام دنیا فقط برای نجات آنها امید به معجزه نه تنها امید، بلکه ایمان به پوچ ترین ها و تصور اینکه ممکن است، شاه دلش رحم بیاید و آنها را ببخشد. من محکوم به مرگی را دیدم که شب پیش از اجرای فرمان مرد. من محکوم به مرگی را می شناسم که قبل از تیرباران شدن صورتش را تراشید، لباسهای قشنگ تنش کرد، از دوستانش خداحافظی کرد و مردانه، رو به مرگ رفت من محکوم به مرگی را میشناسم که در موقع مردن زنده ایران بر زبان داشت من محکوم به مرگی را میشناسم که آهنگ سرودانها ها داغ نفرت خورده دنیای لخت و گروس نگان مدتی پس از شلیک تفنگ ها در هوا تنین انداز بود اما هیچ کدام از آنها را من به این نزدیکی نمیشناختم. بسیاری از آنها را دیده بودم. هیچ یک را از میان ما نبردند آن که گوسفند را از میان گلهی برای کشدارگاه برمی گذینند. دیروز صبح ساعت هفتانی را صدا زدند همون نظافتشی پیرمرد با صدای رسا فریاد میکند دماغش را فینی میکشد به بالا و داد میزند مرتزا فرزند جواد بیا با. قاف علف قا آقا را زمانی میکشد و ابدا برایش فرقی نمی کند که این مرتزا فرزند جواد معشوق ها دختر نوزده ساله را به حبس مجرد میبرند که دق کشش کنند به مرخصی میبرند میخواهند شلاقش بزنند میخواهند زجرش بدهند عفش کنند، به تبعید بفرستند پای دار ببرند یا تیرباران کنند. برای او هیچ فرقی نمیکند او فقط فریاد میزند مرتزا فرزند جواد آقا و فوری پس از آن چندین نفر دیگر من جمله پاسبان بند شش و های همان بند و دست نشانده های آنها فریاد میکنند. مرتضی فرزند جواد اما بنده دل ما پاره شد بعضی شروع کردند به جمع کردن شرش یعنی اساسش بعد از چند ثانیه یکی از ما پرسید با اساسه آن وقت در جواب گفته شد نه برای محکمه میرفت که بمیرد حتما او را به دار خواهند زد. شاید دم در زندان مارگریتا ایستاده است و قبل از مردن یک بار دیگر همدیگر را خواهند دید. حتما همین دم در زندان هم به او خواهد گفت. مارگریتا، مارگریتا به هیچ کس نگویی، به هیچ کس. مرتضا را برای محکمه نمی نمیبردند. دروغ میگویند. به هیچ محکوم در ساعت قبل از مردن نمیگویند که تو را میبریم اعدام بکنیم. با دروغ او را نگاه میدارند وقتی که مرتضا داشت از در اتاق ما بیرون میرفت برگشت و گفت: هوا بارانی است یکی از شما کلاهتان را بدهید به من چند نفر کلاهشان را دراز کردند به طرف او مال مرا گرفت. چه آدم ساده‌ای همه ی محکومین به مرگ ساده می شوند. سخت است تصور اینکه این بدن با این تشکیلات با این ساختمان با این فکر با این همه آرزو و امید با این همه دوستی نسبت به مرگریتا تا چند ساعت دیگر در هم خواهد شکست و از آن هیچ چیز باقی نخواهد ماند سخت است میخواست برود بمیرد میترسید باران سرش را خیس کند شاید هم خودش را باخته بود شاید هم به مرگ اهمیت نمیدهد معمولاً وقتی کسی را برای اعدام میبرند میگویند با اساسه آن وقت رختخواب خواب و تختخواب و رخت و لباس را ازش می میگیرند در دفتر زندان نگه میدارند اگر خانواده داشته باشد به خانوادهاش میدهند و اگر نداشته باشد نمیدانم چه میشود اینکه او را بدون شر بردن در همه ما امیدی دورید کرد آیا ممکن است که او را برای اعدام نبرده باشند؟ در گوشم صدایش هنوز تنین انداز است مارگریتا مارگریتا به هیچ کس نگو به هیچ کس ممکن است که مارگریتا به کسی چیزی گفته باشد؟ آیا ممکن است؟ در این صورت کاش مرتضا میمرد؟ اما نه، این فکرها درست نیست. مرتزا دیشب در رقص مردگان در نیمه شب شرکت کرده. آنجا دست رجب علی رجب را گرفته وردو با هم آزادان رقصیدند. این صداهای وحشتناک رقص مرگ بدن مرا را من رقص استخوان ها را جلوی چشمم می بینم. من خودم حکم او را خواندم. مرتضاف فرزند جواد به اتهام قتل عمدی رجبلی رجبزاده فرزند حاجی رجب بادکوبهی ساکن تهران تحت تعقیب دادسرای شهرستان قرار گرفته و بعد از چند جمله که دیگر یادم نیست حکم تقریبا اینطور ادامه پیدا می کند. نظر به گزارش شهربانی و بازجویی آگاهی مضبوطه در پرونده عمل و اقرار سریح متهم در پیشگاه دادگاه به کاری او در نظر دادگاه ثابت و گناهش مسلم است. سپس باز چند جمله دیگر می‌آید و بالاخره این طور ختم می شود. بنابراین به استناد ماده فلان قانون کیفر همگانی محکوم به اعدام می گردد. حکم را با کمال خونسردی خاند، برعکس مثل اینکه از دل درآمد از این حکم استیناف نداد. حالا یا ممکن است که باز زنده باشد؟ ممکن است که او را اعدام نکرده باشند؟ دیروز صبح او را بردند، مردهش را شاید به مرگریتا دادند، او با معشوقش چه کرده است؟ کس دیگری را در تهران نداشت. کار خیلی آسانی است برای مأمورین. تلفن می کنند به مارگریتا. ما نعش معشوق شما را به امامزاده عبدالله برده ایم. اگر میخواهید بروید آن را خودتان چال کنید. حالا دیگر چرا بعضی شک می‌کنند؟ او را بردند اعدام کنند. با وجود اختلاف نظری که در اتاق ما سر این موضوع برپاست برای من کوچکترین شکی نیست که مرتضی دیگر نیست مگر اینکه مگر اینکه یک زندگی بدتر از مرگ باید نصیبش شود آن وقت من آرزو می کردم که او می‌مرد و دیگر نبود وقتی که رأی محكمه را به او در زندان ابلاغ کردند و او از پجویش خواهی خودداری کرد یعنی استیناف نداد آن وقت اولین گفتگوی سمیمانه ما بین ما شروع شد. چرا استیناف نمیدی؟ از چه استیناف بدم؟ از حکمی که محکمه درباره تو صادر کرده؟ عجب! مگر تو نمیفهمی تو را محکوم به اعدام کردند؟ گویی درست نفهمیده بود که این حکم چه اهمیتی دارد. در اتاق سوم بندشش ما بیست و یک نفر هم منزل هستیم و تنها من به اشتباه ما بین آنها زندانی سیاسی هستم حقیقتش این است که چون من در زندان غصر با یکی از صاحب منصبان کشیک حرفم شد مرا به زندان موقت تبعید کردند قریب شش ماه در سلول های مجرد بند دو بودم و این اواخر چون عده زیادی سیاسی گرفتند و جایشان تنگ شده است این است که مرا به بند عمومی یعنی همین بند شش آوردند. دیگر هم اتاقهای من مختلفین اموال دولتی، رشب خاران، و گاهی آدم کشان هستند. شبها پس از ساعت نه همه مجبورن بخوابند، من دوزدکی کتابم را در میآورم. یک دستگاه چای به پاسبان مأمور می دهم تا مرا لو ندهد و آن وقت با دل راحت شروع می کنم به کتاب خوندن. اگر صاحب منصبی، مدیری رئیسی میآید خود پاسبان به من خبر میداد آن شبی که حکم ادام را به مرتزای ابلاغ کردند دیدم که خوابش نبرده چون میدانستم که زبان فرانسه بلد است کتابم را دو نصف کردم و نصف اول آن را به او دادم او با کمال اشتیاق کتاب را از من گرفت و همین وسیله دوستی ما شد وقتی که حکم دادگاه را به او ابلاغ کردند زیران نوشت رویت شد ما همه ماتمان زد در صورتی که قبلن از پاسبانی که او را به محکمه برده بود کما بیش جریان محاکمه را شنیده بودیم و می دانستیم که هیچ قرینه و دلیلی علیه او در محکمه موجود نبود جز اقرار سریح خودش که گفته بود من کشتم گفته بود که رجبدی رجبوف بادکوبه ای را من کشتم. بار دوم و سوم هم که من پافشاری کردم و از او پرسیدم چرا به این حکم اعتراض نمی چرا استیناف نمی دهی؟ در جواب من گفت چه فایده دارد؟ چطور چه فایده دارد؟ فایده این است که ممکن است تبرئه بشوی و تو را نکشند. من گناهی کردم و باید جزایش را بکشم. چه گناهی کرده ای؟ آدم کشتم تو؟ من انقدر پریشان و دست پاچه بودم که خونسرگیه او اصلا در من تأثیری نمیتوانست بکند بالاخره آنچه حدس میزدم و از گوش و کنار شنیده بودم و در دل داشتم نتوانستم پیش خود نگاه دارم و گفتم من که اصلا باور نمی‌کنم که تو آدم کش باشی از تو این کار بر نمی‌آید. صحیح از که قوی بنی هستی ولی هیچ دلیلی علیه تو در محکمه در دست نبوده است و اگر خودت اقرار نمی کردی، اصلا محکومت نمی کردند. من آدم کشتم. نزدیک بود حوصله هم سر رود. بیشترین بی او مرا آشفته می کرد. ببین رفیق من از زندانی های سیاسی هستم. الان چهار سال و خورده ای بلکه چهار سال و نیم است که در زندان بهسر میبرم می توانی به من اطمینان داشته باشی شاید موجودی است که تو را زیر فشار قرار داده من زیاد زندانی دیدم که تقصیر دیگری را به گردن گرفته و به زندان آمده است گاهی چیزهای مرموزی آدم را دست نشاندهی خود می کنند. آن وقت باید این رمزها را کشف کرد اگر هم تصمیم داری بمیری و نجات خود را در مرگ میدانی باز می توانی آرام بمیری اگر آن که تو را زجر می دهد برای من بگویی ممکن است که آرام بشوی شاید چارهای پیدا شود از امروز که حکم را به تو ابلاغ کردن تا ده روز دیگر وقت داری شاید به کاری کرد هنوز خیلی جوانی موقع مردنت نیست اگر زنی را کسی را دوست داری در فکر او هم باش برای او هم زندگی در صورتی که تو باید بمیری ارزش ندارد بیکس که نیستی کسی به ملاقاتت نمیآید ولی اغلب خوراکی و پوشاکی برایت میفرستند فهمیدم که تنها تیر ترکش من موضوع زن است آن را بیشتر بهكار انداختم من در زندان اطلاع زیادی راجب آدم كشها پیدا کرده بودم بیشتر دهقانان که سر آب یا در نتیجه دسیسه زمینداران با دهقانان دیگر دعوا کرده بودند و بالاخره یکی کشته شده بود یا مردمی بودند که سر زن رقیب خود را کشته بودند دسته سوم آنهایی بودند که در سن پنج یا شش سالگی به زندان آمده و دزدی و جیب بری را در زندان از دوستهای دیگر یاد گرفته بودند و بالاخره پس از پانزده سال دزدی و ولگردی دفعه آخر با سلاح به دزدی رفته بودند و کسی را کشته بودند. این دستکان را جامعه قاتلین به ذات اسم میگذارد، همان کسانی هستند که خود جامعه برای دزدی و جنایت تربیت می کند. من حد زدم که در سرنوشت مرتضاع زنی باید نقشی بازی کرده باشد. و اسم این زن، به طوری که از پاسبانانی که همراه او به محکمه رفته شنیده بودم، و از روی دفتر زندان که از روی آن خوراکی و پوشاکی را برای ما از کسانمون گرفته به ما تحویل میدهند، مارگریتا بود من آخرین هربر را به کار انداختم فرض بکنیم که آدم هم کشته ای. بلآخر محض خاطر زنی بود است اینطور نیست چه فایده دارد که راجبان صحبت کنیم پایدارش این است که تو زنده قایی بود و میتوانی خوشبخت بشوی میخواست شانه خاری کند و جواب مرا ندهد اما من دست بردار نبودم اگر این زن دیگر تو را نمیخواهد پس چرا میخوایی بمیری؟ برای یک چون این زنی که قدر تو را نمیداند چرا میخوایی بمیری؟ اه اینطور نیست نمیدانی که با این حرفایت چطور دل مرا میسوزانی؟ پس تو را دوست دارد؟ چرا باید بمیری؟ از این ستون با آن ستون فرج است برای من دیگر فرجی نیست چطور نیست؟ شاید حکم نقض شد شاید محکمه دیگری تشکیل شد فکر کن شاید تو اصلا کسی را نکشده ثابت کن که تو قاتل نیستی شاید قاتل را میشناسی مجبور نیستی او را بروز بدهی اگر نمیخواهی؟ شاید محکوم به حبس ثبت شدی که میداند که فردا چه اتفاق میافتد؟ شاید دف شدی؟ هزار شاید دیگر هست حرف من رو خط کرد. نه این است و نه آن. من از این زندگی جامد خسته شدم. این زندگی که داشتم مرگ تدریجی بود. محکومیت به مرگ برای من رهایی از زجرهایی است که آن برای هیچ موجودی تحمل پذیر نیست. برای من دیگر زندگی میسر نیست. برای من زندگی پیشرفت و بهبودی ندارد. این حرف صحیحی نیست. دنیا رو به ترقی است، رو بهبودی است. از این موج استبداد و وحشیگری که امروز در دنیا در خروش است، چشم بوشی کن، بالاخره تکامل در کار است. تو چه کار هستی؟ چطور برای تو بدتر میشود؟ دبیر بودم. و بدین طریق من او را به حرف آوردم. بلند بالا و قوی بود. سلامتی ازش میبارید. پدرش در مشروطیت کشته شده بود. مادرش را اصلا به خاطر نداشت. خواهرش در شهر دیگری شوهرداری میکرد و او در خانه پدری به سر می برد. آنچه از پدر و مادر به او رسیده بود، کما بیش خرج تحصیل او شده بود و اینک در دبیرستانهای تهران درس میداد. بیشتر وقت را با کتاب میگذراند. کتاب را دوست داشت چون محجوب و افتاده بود و در مجالس روی صحبت کردن نداشت این بود که از کتاب لذت می‌برد کتاب و این اواخر فیلم و رادیو بزرگی ترین لذت او به شمار می‌رفت عاشق دوستویفسکی نویسنده روز بود بحث این که کتاب‌های او را بخواند می‌خواست روسی یاد بگیرد فرانسه خوب برد بود روزی هم کمی میدانست. گذشته از این گاهی در كافههای تهران دیده میشد و آنجا با دیگران شطرنج بازی میکرد از سینما با موزیک فرنگی خو گرفته بود در خانهاش رادیو داشت و این رادیو نیز به نوبه خود سرگرمی تازهای برای او شده بود به طوری که او را از معاشرت با مردم بینیاز میکرد قریب 150 و تومان حقوق از مدارس میگرفت به علاوه سالی سیصد تا 500 تومان از ملکی که مابین او و چند اموزاده دیگر و خواهرش تقسیم میشد به او میرسید زندگیش آرام یک نواخت و بی درد سر بود جاهطلب نبود خیال وزیر شدن در سر بر برعکس به نظر تخییر البته تا حدی به اینگونه هوسرانیها مینگریست خواهرش که چند سال از او بزرگتر بود، میل داشت به او زن بدهد و به این طریق او را در مسیر یک نواخت خود رو بیاندازد گرفتاری زن و بچه، غذای خانه و آن فکر ازدیاد حقوق، تأمین آسایش کسان، اینها آدم را باز می‌دارند، از اینکه شخص خود را در طوفان بیاندازد. از کنار ساحل دست به باید رد شد. در یاست، شاید آدم را به قرغاب کشند خود او نمیدانست که راه زندگیش چیست دریا را طوفان را دوست داشت اما در ساحل هم آرامشی بود فقط گاهی به ندرت و آن هم اغلب وقتی که تنها بود ممکن بود که کتاب یا پرده سینما یا موزیک و یا درد و بد وقتی دیگران یا شور و اشتیاق او را از این مدار بیرون بیاندازد. هیجان در او ایجاد کند او را بشوراند شیفت و فریفته کند به طوری که پس از چند ساعت پشیمان شود از عملی که در نتیجه شوریدگی دست به آن زده بود آن وقت باز خود را جمع و جور میکرد و باز خود را در شاهراه جمود زندگی روزانه میدید. در گوشه اتاق صندلی لازم است صورت حساب برق این ماه زیادتر شده است به جای اینکه سیصد و پنجاه تومان را بدهد و یک غالی بخرد، شاید بهتر باشد که قرض بدهد. تومانی یک عباسی قرض بدهد. در ماه میشود هفت تومان در سال هشتاد و چهار تومان. خوب، هرچه باشد کمک است. خودش می گفت، سوار کجااب بودم که هل قق مرا از این کاروانسرا به آن کاروان برد و بالاخره به منزل میرسند من تاها قاطری که کجاوه سواران بود چموشی می کرد و اغلب می خواست مرا از جاده بیرون بیاندازد. <تصفيق> بالاخره هم از جاده بیرون انداخت این زندگی یک نواخت یک مرتبه شکل دیگری به خود گرفت مارگریتا با مارگریتا فصل دیگری در زندگی او شروع می شود کلید رمز زندگی اشخاص در دست زنهاست اسم این زن مارگریتا بود این اسم را خودم در دفتر وجوهات زندانیان خواندم هر هفته ما حق داریم پانزده ریال بگیریم کسان ما هرچه میخواهند میتوانند پول به اسم ما به دفتر زندان بدهند مطابق به اسم ما قبض صادر میشود این قبوز را به ما میدهند و در دفتری که اسم گیرندگان نوشته شده است ما زندانیان روی این قبض را امضا میکنیم. روی قبض مرتزا در مقابل این کلمات که آنجا چاپ شده است اسم و نام خانواده و آدرس آورنده وج نوشته شده بانو مارگریتا اوایل هر وقت از او میپرسیدم مارگریتا کیست نمی نمی‌شناسمش اما مارگریتا اغلب می آمد دم در زندان برای او خوراکی می آورد. لباس نو برای او می خرید، پول به او میداد. را معلوم بود که زن با سلیقه‌ای میفرستد. یک دفعه برای او پیجاما آوردند. روی آن با حروف لاتین نوشته شده بود MF. مرتضافه ساعتها می توانست بنشیند و دست اوتو کرده را جابجا جا کند و لذت ببرد. اگر کسی با دقت به چشم های مرتزا تماشا می کرد میدید که کمی تر هستند. از ظوق بود لابرایی لباس ها گل میریختند. با وجودی که مأمورین زندان با کمال خشونت شیرینیها را از جعبههایش در میآوردند و توی دستمال دماغگیری پاسبانان میریختند و برای ما میآوردند، معهاا از این حالتی که شیرینیها به دست مرتزا می رسید او احساس میکرد و هم احساس میشد. که زن با وفای سمیمی در انتظار او بیرون است مارگریتا به هیچ کس نگویی به هیچ کس هنوز این صدا در گوش من تنین انداز است شاید امروز صبح موقعی که میخواستند او را ببرند و دار بزنند دم در زندان همدیگر دیگر را دیدند شاید امروز بعد از ظهر ممورین شهربانی به مارگریتا تلفن کردند بیایید نش عزیزتان را ببرید با این دختر مرتزا را رجبوف که مقصود همان رجب زاده باشد آشنا کرد با آن همه خونسردی و خودداری و حجب و افتادگی که من در مرتزا سراغ داشتم تعجب در این است که هر وقت راجب رجبوف صحبت می کرد دیگر او را نمی شد شناخت چشمایش درشت و گرد صورتش سرخ می‌شد، لبهایش می لرزید. با دو دستش در هوا کار می کرد کلمات لرزان و تند و هم و برهم عدا می شد به طوری که گاهی به ت میافتاد. اینطور این طور او را معرفی می کرد از آن آدمهایی بود که در کافا عرق را توی گیلاس آبخوری می‌ریخت. ریخت ششلیک و چه نقلی سفارش می‌داد. حلاف حلاف میخورد و کیف میکرد، عرق را توی گیلاس آبخوری میرخت که مردم نفهمند، زیرا مسلمان بود و نمیخواست که به اعتبارات او در بازار لطمه ای آید یا اینکه می‌گفت، میگفت، رجبوف با یک دست مردم دائمان مخالفت میکرد و با دست دیگر همیشه موافق بود. با آن دسته که کاری نداشت و به فکرش نمیرسید که این شخص ممکن است روزی به او فایده برساند همیشه مخالف بود و با دسته دیگر در ضمن بحث و مجادله متضادترین و بی رب ترین مطالب را مترادف یکدیگر جزو دلایل خود اشاره می کرد در آخر رجبوف مثل اغلب مردم بود با پدر مارگریتا که او را جزو دوستان خود میدانست همیشه موافق بود یک مرتبه در یک میمانی شراب روی پیراهن پشتگولی مارگریتا ریخته شده بود. پیراهن قشنگی بود. من آن را زیاد دوست داشتم. خودش همان پیراهن را دوست داشت و اغلب آن را با وجود آن لکه که تا اندازه از بین رفته بود می پوشید. یک مرتبه رجبوف متوجه آن لکه شد و پرسید. چرا پیراهنت را لک کرده اید؟ مرگریتار رو کرد به پدرش و گفت. دیدی بابی؟ می گفتی لکه رفته دیدی نرفته؟ پدرش رو کرد به جباف چطور شما لکه ای می بینید؟ رجبوف در جواب اینطور گفت لکه که خیر بگذارید ببینم نه خیر تقریبا چیزی پیدا نیست نخیر روی چیز دیده نمیشود. اصلا چیزی پیدا نیست من از همان روزو را شناختم که چگونه آدمی است؟ آشنایی مرتزا با مارگریتا اینطوری بود. مرتزا میخواست روسی یاد بگیرد و در پی معلم روسی میگشت. یکی از آشنایانش او را با رجبوف که روسی ولد بود آشنا کرد که شاید او یک نفر روسی دان که بتواند درس روسی بدهد پیدا کند. پس از چندی رجبوف به او گفت. بسیار خوب. من چون به شما ارادت پیدا کردم و میدانم که شما جوان نجیب و داری هستید میخواهم به شما خدمتی بکنم. من یک نفر دوست دارم که بسیار آدم خوبی است. او دختری دارد که خوب روسی میداند. اگر میل دارید شما به او فرانسه درس بدهید و او به شما روسی درس خواهد داد. مرتزا چون آدم خجول است نمیخواست پیشنهاد را قبول کند و گفت: خیلی متشکرم ولی دلم خواست معلم مرد داشته باشم و دیگران که در مقابل پول به من درس بدهد. میترسم ترسم که از عهده این تکلیف بر نیایم. میل خودتان است. اما بدانید، اینطور شما بهتر یاد خواهید گرفت و من به شما توصیه می کنم این پیشنهاد مرا قبول کنید. اگر دیدید موفق نمی شوید، آن وقت من سعی می کنم کس دیگری را برای شما پیدا کنم. اهمیت ندهید. خانواده ی دوست من بسیار آدمهای خوبی هستند و شما پشیمان نخواهید شد. مدمازل مرگریتا دختر بسیار باهوشی است و خوب روسی بلد است. گذشته از این میل دارد که فرانسه یاد بگیرد. خانواده ی بسیار خوبی هستند. مرتزا باز هم نمیخواست زیر بار برود و نمیخواست جواب قطعی بدهد. رجبوف آن را رضایت تلقی کرد و دنبالش را گرفت فردا ظهر من آنجا هستم خواهش دارم وقتی کارتان در مدرسه تمام شد یک سره بیایید آنجا و چند دقیقه بعد از ظهر روز دیگر مرتزا آنجا رفت